این داستان درخت بادام یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون در روزگارای خیلی خیلی قدیم شاید دو هزار سال پیش از این مرد ثروتمندی بود که زنی زیبا و پرهیزگار داشت زن و شوهر یکدیگر را خیلی دوست داشتند، ولی نمیتونستن بچه دار بشن آرزوی هر دوشون این بود که صاحب فرزندی بشن زن پرهیزگار شبانه روز به درگاه خدا دعا میکرد که بهش فرزندی عطا کنه. ولی اون دوتا صاحب اولاد نشدند. در حیات خونه اونا درخت بادومی بود. یکی از روزای زمستون زن زیر درخت بادوم در حینی که سیبی رو پوست میکند، انگشتش رو برید و یه قطره خون روی ریخت. زن با سوز دل آهی کشید و به قطره خون نگاه کرد و با اندوه گفت خدایا چه خوب می اگه فرزندی به سرخی این خون و به سفیدی این برف داشتم. وقتی اینو گفت آرامش خاصی بهش دست داد. انگار احساس کرده بود که آرزوش برآورده شده. بعد به خونه رفت. یک ماه گذشت و برفها آب شد. دو ماه دیگه هم گذشت و همه جا سبز شد. کمی بعد همه شاخه های اصلی درختا ها سبز شدن و در هم فرو رفتن و مرغا شروع به خوندن کردند. آواز مرغان در تمام جنگل تنین انداخته بود و شکوفه ها پای درختا ریخته می شد. وقتی پنجمین ماه سپری شد زن اومد و زیر درخت بادو میساد در همونجا بوی خوشی به مشامش رسید. این بو قلب زن و چنان از شادی لبریز کرد که زانو زد و روی شکوفه ها نشست ماه ششم که به پایان رسید میوه ها شده بودن اون هم با تر از پیش به نظر می رسید. در آخر ماه هفتم زن یکی از بادوم ها رو شکست و مغز اونو خورد و با خوردن اون بادوم سخت مریض شد در ماه هشتم همسرشو صدا زد و گفت اگر من مردم منو زیر درخت بادام دفن کنین اما در ماه نهم حالش بهتر شد و فرزندی به دنیا اوورد به سفیدی برف و به سرخی خون وقتی چشمش به فرزندش افتاد اونقدر خوشحال شد که بلا فاصله جان سپرد شوهرش که به خاطر از دست دادن همسرش سخت غمگین بود اونو زیر درخت بادام دفن کرد بعد از مدتی اندوهش کاهش پیدا کرد با گذشت زمانم به کلی قمشو از یاد برد و همسر تازهی برگزید همسر دوم صاحب یک دختر شده بود در حالی که همسر اول پسری به دنیا آورده بود به سفیدی برف و به سرخی خون همسر دوم دخترشو خیلی دوست داشت ولی هر بار که چشمش به پسر ناتنیش می‌افتاد انگار خاری در چشمش فرو میرفت. همیشه فکر میکرد که این پسر مانع بزرگی سر راهشه و دلش میخواست تمام ثروت شوهرش فقط به دخترش برسه. این فکرهای شیطانی در وجود اون رخنه کرد و باعث شد چشم دیدن پسر رو نداشته باشه. مادر ناتنی از هیچ آزاری دریق نمیکرد. آرامش پسر رو از بین برده بود و نمیذاشت آب خوش از گلوش پایین بره. یکی از روزا که مادر به انبار خونه رفته بود دخترکم دنبال او رفت و گفت مامان یه سیب به هم میدی؟ مادر از صندوق سیب سرخی در و به دخترش داد و گفت بگیر عزیزم صندوق دری سنگین و قفلی آهنی داشت دخترک از مادرش پرسید از این سیب به برادرم هم, هم میدی؟ مادر از این سؤال ناراحت شد ولی به روی خودش نیاورد بعد جواب داد وقتی از مدرسه برگشت به اونم از این سیبا میدم. در این لحظه زن از پنجره دید که پسرک از مدرسه برگشته. شیطان بر اون زن قلبه کرد و با عصبانیت سیبا از دخترش گرفت و به اون داد. نباید قبل از برادرت از این سیبا بخوری. بعد سیبو داخل صندوق پرت کرد و در اونو بست. وقتی پسرک وارد شد دوباره نیروی شیطانی به سراغ زن اومد و اونو وادار کرد با لحنی ساختگی بگه پسرم سیب میخوری از نگاه زن شرارت میبارید. پسرک گفت: مادر چقدر قیافت ترسناک شده ولی بله دلم میخواد یه سیب بخورم. زن فکر کرد باید اونو کمی آروم کنه برای همین گفت همراه هم بیا. بعد رفت و در صندوق سیبو باز کرد و به پسرک گفت حالا یکی از سیبا بردار. پسرک هم شد تا یکی از سیبا برداره که شیطان گولش زد و زن در سنگین صندوق محکم بست و گردن پسر لای اون موند. زن ترسید و با خودش گفت چطور میتونم از شر این کار در بمونم؟ با اجل به اتاقش برگشت و از کمد یه پارچه سفید برداشت. بعد سر و گردن پسر رو با پارچه سفید بست و اونو روی صندلی بیرون نشوند سیب رو هم در دستش گذاشت. مدتی که گذشت خواهر کوچولوی پسر به آشپزخونه نزد مادرش اومد و گفت برادرم با رنگ روی پریده بیرون در نشسته و سیب هم دستش داره. از اون خواهش کردم سیب رو به من بده ولی صداش در نیومد. منم ترسیدم. مادر گفت دوباره برو. اگه این دفعه بهت سیب نداد یه سیلی به صورتش بزن. مارلین نزد برادرش رفت و گفت سیب تو بده به من. ولی صدای از برادر در نیومد. دخترک یه سیلی به گوش برادرش زد و سر پسرک از تنش جدا شد و روی زمین قلتید. دخترک وحشت زده جیق کشید و دوون دوون نزد مادرش رفت و با گریه گفت مامان من سر برادرم و شدا کردم. دختره که از کردم دخترک از ناراحتی همچنان جیغ میزد و آروم نمیگرفت مادرش گفت چی کار کردی ساکت باش مبادا کسی از این جریان با خبر بشه حالا باید چارهای پیدا کنیم میتونیم اونو زیر درخت بادوم دفن کنیم بعد مادر ناتنی پسر کوچیکو و بلند کرد و در جبهای گذاشت و جعبه رو زیر درخت بادوم دفن کرد مارلین کوچولو کنار درخت ایستاده بود و هایهای های گریه میکرد و به پهنای صورتش عشق میریخت. طولی نکشید که پدر به خونه اومد. وقتی پشت میز نشست با تعجب گفت پسرم کجاست؟ مارلین هنوز داشت گریه میکرد که مادر ظرف بزرگ خورش رو آورد. پدر دوباره پرسید پسرم کجاست؟ مادر جواب داد اون به ده مجاور رفته، قرار شده مدت کوتاهی اونجا بمونه پدر گفت اصلا برای چی به اون ده رفته؟ چرا خدافزی نکرد؟ مادر گفت ناگهان دلش خواست به اون ده بره منم بهش اجازه دادم که شیش هفته در اونجا بمونه نگران نباش موازه بشن پدر گفت خیلی ناراحتم کار خوبی نکرد لاغش صبر میکرد از من خدافزی میکرد با گفتن این حرف شروع کرد به خوردن بعد رو کرد به مارلین و گفت تو چرا اینقدر گریه می برادرت زود بر می اون وقت مرد به زنش گفت چه خورش خوشمزه شده بود همسرم. بازم برام بریز. مرد چندین بار برای خودش خورش ریخت و خورد تا تموم شد. مارلین کوچک به اتاقش برگشت. از کمدش بهترین دستمال حریرشو درآورد آورد و باز هم گریه کرد. بعد رفت زیر درخت بادوم و روی علف سبز دراز کشید. ناگهان احساس شادی و آرامش کرد و گریش بند اومد. درخت بادوم به حرکت در اومد. شاخه های کوچیک و بزرگ اون کاملا از هم باز شد و فاصله گرفت و دوباره به جای اول برگشت. شاخه ها که به هم میخوردند درخت درست مثل انسانی به نظر میرسید که از شادی دست میزنه. بعد بخاری از درخت بادوم برخاست. ناگهان از وسط بخار توده آتشینی بیرون اومد و از بین اونا پرنده زیبا که نقمه دلانگیز میخوند به سوی آسمان پرواز کرد. وقتی پرنده تا دور دست ها پرکشید درخت بادوم به حالت اول برگشت. مارلین کوچولو این صحنه رو که دید شاد و سبکبال انگار برادرش زنده شده باشه برای خوردن شام به خونه برگشت پرنده روی شیروانی ای که صاحب اون زرگری بود نشست و این نقمه رو خوند مادرم منو به کشتن داد و پدرم در سوگ من نشست خواهر کوچکم مارلین در فراغ منزیر درخت بادوم گریست آه که من چه پرنده زیبایی هستم زرگر که در کارگاه خونش سرگرم ساختن زنجیری طلایی بود صدای پرنده رو از روی شیربونیش شنید و دید که چه پرنده زیبایی. بعد بلند شد و از در بیرون پرید پاش به لبه در خورد و یه لنگه دمپاییش افتاد ولی چون عجله داشت یه پا با یه پا دمپایی به وسط خیابون دوید پیشبند چرمی کارگاه رو بسته بود در یه دستش انبور بود و در دست دیگهش زنجیر طلایی خوشید در آسمان می درخشید و زرگر محوه تماشای زیبایی این پرنده شده بود. دست آخر پرسید پرنده زیبا تو چه خوش صدایی؟ یه بار دیگه همون آوازو بخون. پرنده گفت نه من مجانی چیزی نمی خونم. اون زنجیر طلایی رو به من بده اون وقت دوباره می خونم. پرنده نزد زرگر اومد. زنجیر طلایی رو پای راست خودش گرفت و بعد شروع کرد بخوندن. و همون شعر رو خوند. پرنده بعد از اون روی شیربانی خانه کفاشی رفت و همون نقمه رو سر داد. کفاش این صدا رو که شنید با لباس کار از در مغازه بیرون اومد. دستش رو بالای چشاش سایبون کرد تا درخشش آفتاب آزارش نده و به پشت بام نگاه کرد. بعد صدا زد. همسرم بیا ببین چه پرنده قشنگیه چه صدای خوبی داره. بعد هم با حیجان بچه ها و شاگردای مغازش رو صدا کرد. همگی به وسط خیابون اومدن و به پرنده خیره شدند. کفاش گفت نگاه کنید چه پرنده زیبایی، دور گردنش چه پرهای قرمز و سبز قشنگی داره، پرهاش مثل تلاست، چشمهاشم هم مثل ستاره می درخشه، کفاش از پرنده خواست که دوباره آوازش رو بخونه، پرنده گفت من که مجانی آواز نمیخونم. خونم کفاش به همسرش گفت توی مغازه روی قفس بالایی یه جفت کفش قرمزه اونو بردار و بیار. زن کفش رو آورد و کفاش گفت پرنده عزیز حالا اون ترانه رو دوباره بخون. پرنده پایین اومد. کفشا رو با پای چپش بلند کرد و به بالای پشت بوم پرید و شروع کرد بخوندن. آواز پرنده که تموم شد از اونجا گریخت. و در حالی که زنجیر رو به پای راستش و کفش رو به پای چپش گرفته بود به طرف یک آسیاب پرواز کرد. پرهای آسیاب صدا می کرد و بیست کارگر داخل اون سرگرم کار بودند. اونا سنگی رو می و شکل می‌دادند. پرنده پرید روی شاخه درخت لیموی جلوی آسیاب نشست و شروع کرد به خوندن. مادرم مرا به کشتن داد. یکی از کارگران از آسیاب بیرون رفت و پدرم در سوگ من نشست دو کارگر دیگر بیرون رفتند و به ترانه پرنده گوش سپردند خواهر کوچکم چهار تای دیگه بیرون رفتند مارلین دیگه فقط تای اونها در آسیاب باقی مونده بودند در فراغ من فقط پنج نفر ماندند زیر درخت بادام گریست تنها یک نفر در آسیاب ماند آه که من چه پرنده زیبایی هستم؟ آخرین نفر هم وقتی آخرین کلمه رو شنید بیرون اومد و به پرنده گفت چقدر زیبا میخونی؟ بزار من همین ترانه رو بشنوم. یه بار دیگه اونو بخون. پرنده گفت من یه ترانه رو دوبار نمیخونم. سنگ آسیاب رو به من بدین تا دوباره بخونم. آسیابان گفت این سنگ که فقط مال من نیست. بقیه کارگران گفتند اگر اون ترانه رو یه بار دیگه بخونه سنگ آسیاب رو بهش میدیم. پرنده از روی درخت پایین اومد و کارگران آسیاب کمک کردند و سنگ رو مثل حلقه به گردن پرنده انداختند پرنده دوباره رفت روی شاخه درخت و شروع به خوندن کرد ترانه که تموم شد، پرنده بالهای خودشو باز کرد و در حالی که با پای راستش سنجیر طلا با پای چپ یک جفت کفش و به دور گردنش سنگ آسیاب و حمل می کرد، به سمت خانه پدرش به پرواز در پدر، مادر و مارلین کوچولو سرگرم خوردن غذا بودند که پدر گفت نمیدونم چرا ناگهان احساس کردم خیلی شاد و سبک بالم. مادر گفت برعکس من وحشت کردم، انگار میخواد طوفان بشه، مارلین کوچولو شروع کرد به گریه کردن. وقتی پرنده اومد و روی بام نشست، پدر گفت سراپای وجودم چنان لبریز از شادی شده و آفتاب بیرون اونقدر با تراوت و زیباست که احساس میکنم انگار یک آشنای قدیمی دوباره به خونه برگشته. همسرش گفت ولی ترس و دلهره آنچنان بر من قلبه کرده که دندونام به هم میخوره. انگار به جای خون توی رکام آتیش جاریه. بعد با استراب یقه لباس خودشو باز کرد. مارلین کوچولو هم گریان در گوشه میز نشسته بود. پرنده روی شاخه درخت بادون پرید و شروع کرد بخوندن. مادرم منو به کشتن داد. مادر با انگشت گوشهاشو گرفت و چشمهاشو بست تا نه چیزی ببینه و نه چیزی بشنوه. ولی صدای پرنده به گوشش میرسید و چشمهاش مثل سائق زده ها و دودو میزد. و پدرم در سوگ من نشست. پدر گفت نگاه کن اون پرنده زیبا چه صدای باشکوهی داره. چه آفتاب دلپذیری و چه بویی. انگار امروز همه چیز بوی دارچین میده. خواهر کوچکم مارلین مارلین کوچولو سرش روی زانو گذاشته بود و زارزار گرگه می کرد. پدر گفت من باید بیرون برم و این پرنده رو از نزدیک ببینم. زن مانه شد و گفت نه نه رو انگار همه خونه به لرزه در اومده شاهدم داره آتیش می گیره. پدر به حرف زنش توجه نکرد و رفت پرنده رو ببینه. در فراغ منزیر درخت بادوم گریست، آه که من چه پرنده زیبایی هستم پرنده از اون بالا زنجیر طلایی رو رها کرد و زنجیر دور گردن مرد افتاد زیبا و کاملا مناسب او بود مرد به خونه برگشت و به زن و دخترش گفت ببینین چه پرنده زیبایی برای من یه زنجیر طلا آورده این زنجیر چقدر زیبا و عالیه ولی زن که همچنان وحشت زده بود از ترس روی زمین افتاد پرنده به خوندن ادامه داد و پدرم در سوگ من نشست. زن گفت کاش زمین دهان باز می کرد و منو فرو می برد که هرگز چنین ترانه ای رو نمی شنیدم. بعد قش کرد و از حال رفت. خواهر کوچکم مارلین. مارلین گفت آه چه خوب منم میرم شاید پرنده چیزی برای من آورده باشه. پرنده با دیدن مارلین کفش ها رو به طرفش پرد کرد. مارلین کفش ها رو پوشید و با خوشحالی به طرف اتاق برگشت. اون رقص کنن به این طرف و اون طرف میپرید و میگفت غمگین و افسرده رفتم، شاد و سر حال برگشتم. چه پرنده باشکوهی، چه کفش زیبایی به من داد. زن که موهاش مثل شعله های آتیش روی سرش راست ایستاده بود از روی زمین بلند شد و گفت احساس غریبی دارم، حس میکنم دنیا به آخر رسیده. شاید اگر از اتاق بیرون برم حالم بهتر بشه. اما همین که پاشو از اتاق بیرون گذاشت صدای وحشتناکی بلند شد. پرنده سنگ آسیاب و روی سرش انداخته بود و اون در جا مرده بود. پدر و مارلین کوچولو با شنیدن صدا سراسیمه از اتاق بیرون اومدن و دیدن که دود و شراره های آتیش از زمین بلند میشه. وقتی دود و آتیش محو شد، برادر و دیدن که اونجا ایستاده. پسرک دست پدر و خواهر کوچیکشو گرفت. بعد هم را گرم و صمیمانه در آغوش کشیدند و هر سه با هم برای خوردن غذا به اتاق برگشتند و با هم زندگی نو و خوشی رو شروع کردند. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی تی نقته tme ش مهران دوستی تی نقط م s t i b l o g f a c o m com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی